شاگرد بغداد ششم ثانیه آنکه به بهایش فکر کنم اسب ابلقی از استبل دزدیدم و به دنبال شمس تبریزی به راه افتادم تا آنجا که می توانستم سعی می کردم فاصله ام را با او حفظ کنم تا متوجه آمدنم نشود به بغداد که رسیدیم شمس در بازاری ایستاد تا آزوقه راه تدارک ببیند با خودم گفتم الان وقتش است و خودم را جلو اسبش انداختم شمس از بالای اسب خم شد و پرسید پسر نادان مو قرمز چرا روی زمین ای؟ به نظر میرسید هم تعجب کرده هم خوشش آمده جلو اسبش زانو زدم و مثل گداها دو دستم را جلو گرفتم و التماسش کردم میخواهم با تو بیایم توی قهرمان من اجازه بده من هم بیایم گفت مگر تو میدانی من به کجا میروم لحظه‌ای گیج شدم راستش به این موضوع اصلا فکر نکرده بودم. نه، اما چه فرقی میکنن؟ میخواهم مریدت باشم. تو را سرمشق خودم قرار میدهم. گفت: حرف بیهوده میزنی. من نه مراد میخواهم نه مرید. به تنهایی میگردم. حال و حوصله این را هم ندارم که سرمشق کسی باشم. با این حرفها مرا پس راند. قاعده در این دنیا بیش از ستاره های آسمان مرشد نما و شیخ نما هست. مرشد حقیقی آن است که ترا به دیدن درون خودت، و کشف کردن زیبایی های باطنت رهنمون می شود. نه آنکه به مرید پروری مشغول شود. التماس کنان گفتم، رخصت بده من هم بیایم. به پاهایت می‌افتم. تازه، همه سیاه مشهور، وردستی، شاگردی، چیزی داشتند. من هم پادوی تو می شود. شمس طوری که انگار به فکر فرو رفته باشد چانهاش را خاراند ای گمان کردم به من حق داده ناگهان پرسید شاگردمو قرمز جنمش را داری که با من رفاقت کنی؟ هیجان زده و خیلی سریع بلند شدم البته که دارم جنمم از جوهرم است گفت: «خیلی خوب، پس حالا که میخواهی مرید من باشی اولین وظیفت این است. به نزدیکترین میخانه برو یک کوزه شراب بخر. بعد بیا وسط این میدان بیست و کوزه را لاجره سر بکش. دهانم از حیرت باز ماند. این همه مدت، برای پخته شدن در راه تصوف زحمت و مهنت و عذیتی نمانده بود که تحمل نکرده باشم. برای تقویت معنویاتم ست تا پیاز را با هم خورد می کردم. توی دیکای بزرگ پلوی چرد می پخدم. شیرینه های اصلی درست می جلو آتش توی دودادم می نشستم و قابلمه هم می زدم دیگ میسایدم در و پنجره برق میانداختم اینور آنور را جارو میزدم خلاصه مثل سگ جان می کندم. اما راستش معنویاتم آنقدر تقویت نشده بود که توی شلوغی بازار بیستم و جلو چشم همه شراب بخورم مانده بودم که چه کار بکنم گفتم از تقفر الله توبه اگر پدرم بشنود پاهایم را میشکند به خدا خانواده ام مرا به خانقاه بابا زمان فرستادند تا مسلمان خوبی بشوم نه اینکه کافر و گمراه بشوم بعدش این جماعت درباره ام چه فکری میکنند در همسایه چه میگویند؟ شمس با نگاه های سوزان سر تا پایم را نگریست. درست مثل اولین شب که من از سوراخ در او را می پاییدم، با نگاهش دلم را له کرد و از بین برد. سرانجام حکمش را درباره ام داد. افسار اسفش را کشید و گفت شاگردمو قرمز تو نمی توانی مرید من بشوی به اینکه دیگران چه فکری می کنند و چه نظری دارند خیلی اهمیت می دهی. اگر این باشی انتقادها و حرفهای آنها نمی گذارد هیچ کاری بکنی. فهمیده بودم فرصت همراهی شمس را از دست دادم. اما برای آخرین بار سعی کردم از خودم دفاع کنم. خیلی خوب. اما وقتی به من گفتی برو شراب بخر گمان کردم میخواهی درستی اعتقادم را امتحان کنی. از کجا می امتحانم همین است؟ فکر کردم ایمانم را امتحان می کنی. شمس ابرو در هم کشید آزمودن صحت ایمان دیگران وظیفه ما انسانها نیست؟ بنده نمیتواند ایمان بنده ای دیگر را بسنجد، مگر نمی اطرافم را نگاه کردم. انگار دنبال راه چاره می گشتم. حرفهای درویش را سبک سنگین کردم، اما نفهمیدم باید در کدام کفه بگذارم. ذهنم آنقدر مقشوش شده بود که شقیقه هایم زخزخ می کر. یقی پیراهنم را باز کردم انگار نفسم بند آمده بود شمس با همان لحن آرام و باوقار ادامه داد شاگردمو قرمس میگویی میخواهی به دریای تصوف قدم بگذاری اما حاضر نیستی بهایش را بپردازی اینطوری نمیشود برای یکی پول و ثروت طله اصلی برای یکی دیگر شهرت و مقام برای دیگری تن و شهوت انسان در وهله اول باید از شر چیزی خلاص شود که در این دنیا بیشترین اهمیت را برایش دارد این شرط اول قدم گذاشتن در این راه است پس از گفتن این حرفها خم شد و گردن اسبش را نوازش کرد. بعد طوری که بخواهد حرفش را به پایان برساند گفت: به گمانم اگر در بغداد بمانی و پیش پدر و مادرت برگردی، براید بهتر است. صنعتکاری با شرف پیدا کن و شاگردش بشو. حسی درونی به من میگوید که در آینده بازرگانی موفق می شوی اما مواظب باش از آن بازرگانهای حریس نشوی الان با اجازت می خواهم راه بیفتم آخرین بار برایم دست تکان داد با پاشنه پاهایش به شکم اسب زد اسب را کرد و چهار نال دور شد دنیا زیر سم اسبش به حرکت درآمده بود. من هم پشت اسبم پریدم و تا های بغداد از پیش رفتم. اما فاصله من رفته رفته بیشتر می شد. سرانجام به نقطه ای در افق تبدیل شد. منتظر ماندم و خدا میداند حتی خیلی پس از آنکه آن نقطه سیاه در افق از نظر ناپدید شد نگاه های سوزان شمس را تا اعماق قلبم حس می کردم